الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى الشفر انبیاء والمرسلین وعلى آده واصحابه اجمعین اما بات وقتی که مصریان و خانم های اشراف مصر حضرت یوسف علیه السلام را به طرف فحشا دعوت میدادند و هر کدام از آنها تمایل به یوسف علیه السلام نشان داد و حضرت یوسف علیه الصلاة والسلام همه آنها را رد کرد و زندان را بر خواهشات نفسانی ترجیح داد حدیث داریم که داخل صحیح بخاری نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم می که هفت گروهن روز قیامت زیر عرش الهی جای می یکی ایک از اون جوانی است در جوانی الله رب العالمین را عبادت می کنند. کسانی که قلب اونها با مسجد وابسته هست کسانی که بخاطر الله رب العالمین محبت میکنند اما بین اینها یک گروه اونهای هستند که ی خانم زینسب نسبدار و ایک خانمی که داره کمالات هست او را به طرف فحشا دعوت می دهد و دعوت او را قبول نمی کند چنین شخصی هم روز قیامت زیر عرش الهی جای دارند اینجا نبی مکرم اسلام صلی اللہ و وسلم فرمودند که خانمی که داره نسب باشه و کسی را به طرف دعوت داد قبول نکر میر زیر عرش روز قیامت که هیچ سایئی جز عرش الهی نیست اونجا اینجا هم حضرت یوسف عليه صلاة و سلام در همین ایبتلائی بزرگ قرار گرفتا کسی که حضرت یوسف عليه صلاة و سلام را دعوت میداد جز افراد اولی مصر بود هم به اعتبار نصب خیلی بالا بود و هم به اعتبار مقام خیلی بالا بود و هم به اعتبار حسن و جمال هم بالا بود یعنی اون تمام دعیه فساد وجود داشتن اینجا نبی مکرم سلام صلی اللہ علیہ وسلم وقتی که ذکر فرمودن که او را شخصی شخصی زی زیمنصب و زی سر داره نصر بالا دعوت میدهد اجابت کردن اینجا بیشتر هست وقتی که هرچی مقام و زیبایی و کمالات کامل تر باشند اون انگیزه فعالتر میشه. و در این صورت اگر کسی بتون خودش راه حفاظت بکند عجل بسیار بزرگ هست که زیر عرشه الله رب العالمین جای می حضرت یوسف علیہ الصلوۃ با باوجود این همه امکانات باز فرمودن که رب سجن و حب الیہ مما يدعوننی الیہ با رہ لا زندان برای من بهتر هست از چیزی که اونها دارن دعوت میدن دا اونها کی بودن اینجا خانومهای مصر بودن مصریان بودن با زلیخا اینجا هم دو معنی داره یا این کہ اینا همه می گفت که از دلخا اطاعت بکن یا معنی بعدی هر کدام جداغانی یوسف علیه صلات و سلام را به طرف خودش دعوت می‌داد و اون تمایل خود را نشان می داد. وقتی حضرت یوسف علیه صلات و سلام برای رهایی از کهید شیطان و مکر خانوم تنها راهی که برای خودشان دیدن زندان بود که دو راه بیشتر نداشت یا اجابت کردن یا زندان رفتن راه پس حفظ ایمان حفظ حیا، از آزادی انسان مهمتر هست حضرت یوسف علیه و وسلام ایمانیات را ترجیح داد اون چیزی که باعث نجات اخروی بود بظاهر اگر چه داخل زندان داره میره اما این زندان در اصل یک دریچه نجاتی بود از فتنها در قرب قیامت وقتی در دجال می آید دجال هم در حدیث صحیح داریم که آب داره نام دارد و در این رواتی می آید که هم بهش داره و هم جهنم داره آتش داره هر کسی داخل آتش وارد بشه اون کامیاب هست اینکه داخل باغ شوارد بشه از نعمتهای و استفاقه کنید از آزام می بینید از آتشور رحمت و این طرف که باغ شوارد از آزام ایم تارید اینجا با چون چونکه در احادیث دارین دجاجل زیادا دجالها زیادن. این دجال واقعی است که در قرب قیامت می آید اما دجاجلهایی ای که به طرف فحشا دعوت میدهند کار دجال و انجام میدهند در هر زمانی بودهاند حضرت یوسف علیه سلاط و از اون دجل اونها و مکر و هیله اونها فرمونه که رب سجن و حب ایلی من ما یدعونن زندان و طلب کرد چون زندان مثل همون حیله دجال این راه بوده بود از گناه ها بود راه به طرف رسیدن به پروردگار و ذات باری تعالی بوده بعد اونها دیگه مصری‌ها وقتی که تصمیم اونها برای این بود که باید تا یک مدتی حضرت یوسف علیه و السلام به زندان بوردشواد تا که داستانش خاموش بشه قواغاها خاموش بشن اما با وجود این هم یوسف علیه الصلا و السلام زندان رو قبول کردند. الله رب العالمين فهمید و داخل معاصی جن داخل زندان قرطی تشریف بردن بعد الحضرت یوسف عليه السلام دو جوان دیگر داخل زندان آمد. قال احدم اني عسل و خمره اني اراني و خمره من خام میبینم که دارم شراب درست میکنم. و قال الآخر اني ارانی آحم الفوق راس تا اکلو ترمینو نبی نبی تاویله نراک من المحسنین نفر واز گو من خواب میبینم که روی سرم دارن نان حمل میکنم و پرندگان از این نانها دارن میخورند نبی نبی حالا این تعویل این خواب ما بیان بکن. بی اننا نراک من المحسنین ما ترا یه شخص محسن و خیرخوا و خیراندیش می بی بھی اینها که الله اللہ و دخل معہ و سجن فطیان ہمرا با یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دو نفر داخل زندان رفت این همراه نبودن همزمان هم زمان یعنی تقریبا هم در همون زمان بودن نزدیک به هم بودن. بعد از حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ها اومدان ابو حضرت یوسف رفتن بعد از اون به این دو نفر و این جون نبود که هم زمان وقتی حضرت یوسف رفت اونها رو همه برن وقتی حضرت یوسف علیه السلام و سلام به زندان برده شد نزد میگن که سوار اولی کردن خیلی با به حالت زشتی حضرت یوسف را می بردن و می گفتن این همسزای کسی هست که با آغایش یا مالکش بد رفتاری بکنه اطاعت نکنه همه اینها رو یوسف علیه السلام سلام قبول کردند. بعد اون دو نفر اومدن دو نفر که اومدن اینجا معه و سجنه دو نفر هم راهی اینجا یعنی با تاخیر چون الله جای دیگه هم در مورد حضرت سلیمان میفرمایند که اینی اسلام تو معا سلیمان رب العالمین بل قسمی که اینی اسلام تو معا سلیمان ما امره سلیمان سلیمان شدم این جنلی که با هم الله ایمان بیعوره حضرت سلیمان نبی اود قبلها ایمان آورده بود اما موافقت کرد دین حضرت سلیمان را و آین حضرت سلیمان را اینجا هم همراهی به ایمان این بعد حضرت یوسف اینها در زندان رسیدن چرا اینها را زندان فرستادن؟ علت زندان فرستادن اینها این اینا دو نفر بودن یکی همون آشخز پادشاه بود و نفر بعدی مسئول نوشیدنی های پادشاه ها بود. اشراف و بزرگان دربار یه میسر دنبال یک توطئه بودن خاصا توطئه بکنن و پادشاه رو بکشن وقتی که خاصن توطئه بکنن فهمیدن تنها مناسب ترین چیزی ما میتونیم موفق بشید همین دو نفرن داخل غذاهات سند بریزن اومدن پیش این دو نفر و به اینها رشوه دادن رشوه دادن ما اینها رو بگیم مبلغ زیادی و داخل غذا سم بریزید و در نوشیدنی ها سم بریزید و پادشاه می میره به مبلغ بیدیم آشفت یا کسی که نان می پخت چون در بعضی نیت خباز بود کسی که شاتر بود این قبول کرد قبول کرد که من داخل اینها سم میریزم. رشوه رشوهار فزی رفت و مسئول بعدی هم فزی رفت مسئول نوشیدنی ها پ که من دقی نوشیدنی های پادشاه اینسم میریزم اما اون یکی تشیوان شد. گفت این کار انجام نمیدم و نباید این کار انجام بدیم. امادم با هم پیش پادشاه آب و غذا آوردن وقتی که رسیدن همون کسی که مسئول آب بود به پادشاه گفت که از ها این قضاها نخو اینها مسمومه مسئول غذا خورنگ گفت که آب هم نخو آب هم مسمومه علم بعضی نیگه که اسم شرهم بودی بود سرهم بود و اسامی مختلفی گفتن وقتی که اینجوری گفتن پادشاه دست کشید و گفت به کسی مسئول آب بود که همین نوشیدنی که آوردی خودت بخورد ای هم بالا کشید چونکه سند داخلش نبود ایچی نشود. بعد گفت به نفر بعدی که اللہ قضاها رو بکردو نخورد قضاها رو اسراک رو نمان نمی خورم وقتی که نخورد قضاها رو جروح حیوانی گزاشده حیوان مرده بعد از او پادشای رو زندان فرستاد زندان که رفتن داخل زندان حضرت یوسف علیه صلات و اونجا اونجا فرما بودن در تورات ایک در تورات آمده در داستان حضرت یوسف علیه سلات و السلام به وقتی داخل زندان حضرت یوسف رسیدن زندانبان بان دربان زندان هم عاشق یوسف شد محبت یوسف را در دلش گذاشت و و اداره زندان را به او واگذار کرد هر چی یوسف میکن قبول میکن و به اینهی هم قرآن این چیز تایید میکنه چون که وقتی که اونها رفتن پیش حضرت راحت می نشستن صحبت می کرده در زندان‌های قدیم انجوری جوری نبودن سلوله‌ای بودن اعلی رفتان باهاش صحبت کردن این می‌رسونه که یوسف علیه الصلا و السلام آزادان در زندان زندگی میکرد و یک روایتی را که ابن ابی حاتم تخریج کرده و بعضی از علما هم اون روایت رو آورده مولانا حافظ ابن کثیر رحمه الله اون روایت را ذکر کرده و همچنین اللهم آلوسی رحمه الله هم ذکر کردی هم بی وقت داخل زندان رفتن همین دو نفر گفتن که ما تو رو خیلی دوست داریم وقتی اینجوری گفتن فرمود که عوض بی الله خدا من دوست نداری، با من محبت نکنیم هر مشکلی که آمده محبتها محبت ها آمده با من محبت کر مشکلات درست شد پدرم محبت کر برادرها دشمن شدن داخل چهان داختن مصر آمدم، زلیخا محبت کر، به زندان افتادم. حالا شما محبت می مصیبت دیگر درست میشه. محبت نکنید، من از محبت می فنا، فنا به خدا از این محبت ها. چون خیلی آسیب حضرت یوسف علیه السلام از همین عشق و محبت خورده بود. پس در این عشقها خیلی نیست، از این عشقها فاصله بگیرید. حضرت یوسف علیه السلام، تمام مسیبته یوسف علیه السلام، بخاطر خاطر زیبایی بودن اون چیزی شما دنبالش خیلی میگردید، و این گریم, گریم که میکنن، از که جوانها می‌زنن اینا شو که بی تراشان خاطر زیباییه یه كل مصیبت‌ها از درست اونجا زیبا بود خالص محبت کرد که دوار مشکل‌ساز و سالها سال با حال رفت متهم به سرغت دوار زیبایی اینقدر زیاد که حضرت یعقوب علیه الصلا و سلام زیبایی بعدی که زلیخا رو دیوانه که قدم بعدی خانواده مسی دیوانه شدن و قدم بعد زندان کرسی اونها دیوانه شدن این زیبایی هر جا رفته مشکل ساز بوده پس در زیبایی چندان خیری نیست زیاد دنبال زیبایی نگردید خیر در عقل هست خیر در علم هست در دانش است این انسان ها رو بزرگ می اگر زیبا باشید اما عاری از علم باشید هیچی چی ار بی ارزش اما اگر عالم باشی دانشمند باشی اگر زیبا هم نباشید خیلی ارزش دارید کمال انسان در زیبایی نیست چون زیبایی اختیاری نیست زیبایی یک چیزی غیر اختیاری هست هم مشکل درست میکنه و غیر از اون دیگه کاری رو برای شما درست نمیکنه به هر حال حضرت یوسف علیه صلات و صلاح این مشکلات از همه اینها خاطر همین خسر زیبایی متحمل میشود بعد داخل زندان یوسف علیه, علیه سلات و یک انسان بسیار بزرگ از خانواده خودش نبی پدر نبی پدر بزر نبی جد بعدی نبی از خانواده نبوت اونجا که رسید این زندانی ها همه اونها آسی بودن از زندگیشون کلافی بودن خودکشی ترجیح میدادن گفته دفت ما هیچ خیری نیست اما یوسف علیه سلات و در زندان که رسیدن اونها رسیدگی میکرد اونها کمک میکرد اگر کسی بیمار بود ایادت میکرد کاراشو انجام میداد داخل خود زندان عبادت میکرد گله میکرد نظافت میکرد اونها رو دوباره تسلی میداد دلداری میداد میفرمودن که صبر کنید در صبر عجر هست زندگی بعدی خوب میشید وقتی که معاشرت حضرت عیسی علیه السلام را دیدن خود زندانی ها خیلی وابسته شده همیشه که یوسف علیه السلام می نشستم صحبت رو گوش می‌کردم، کردم رو گوش می‌کردم. بعد گفتن که خیلی بهترین رفی برای ما رسید. حالا ما دیگه احساس تنگی نمی دلتنگی این بود که انا راکی من المحسنین تو از نیکان خوبانی چون خوبی خوبه تنها چیزی که انسانو خیلی بزرگ می‌کنه خدمت کردنه و تنها چیزی که اصلا در اون حسودی نمیشه خدمت کردند در خدمت نه حسودی هست و نه در این افت هست خدمت یک سکوی پرتاب خیلی قوی هست که انسان رو خیلی زیاد رشد میدهد و او هم حسود نداره همین حالات شما اینجا معتقیفید وقت افتار حالا کسی بلند بشه صفره بیاندازه یا بره زرف بگیره قضاها رو بیاوره یا وارث بگیر، آب تقسیم کنه هیچ کا حسودی نمیگه که کنه نکرمان نمییک نز... دشمنی هم کسی نمیکنه در این خدمت دشمنی نیست اگر کسی داخل به سفور بیاد و دیگه من خیابانو آس تمیز میکنم نظافت می‌کنه هیچ کس دشمنی نمیکنه در این حسادت نیست در خدمت حسادت نیست اما در خدمت رشد هست بزرگی و کمال است افرادی که رشد میکنه از خدمت کردن به خلق رشد میکنن اونناهایی که خادم خللق از وقت خودشان از جان خودشان از مال خودشان وقتی مایه میگذارن اینجا دیگه همه اونو با اونها محبت میکنن. الله رب برعالی او را محبوب قبه ها میگذاره انویها خدمت میکردن در تمام قبه ها جایگاهی داشتن حالا دارن خدمت میکنن هیچ کس با اونها حسودی نمیکنه. کسی نمیگه بزار حالا تکونه بشین من على بستر روی کول میذارم بیرن جماعت میگه برو در خدمت فقط رشد هست در خدمت فقط آبادی هست و بزرگی هست حضرتیوسو علیه السلام با خدمت اهل مصر را اونجا هم دوباره جروتا میرسی این که شیفته خودش کرد و در زندانم خدمت میکرد و برای اونها کار میکرد پس خدمت کردن متعلق به یک جای خاصی نیست هر جا میشه خدمت کرد این ترکیب خاصی نمیخواد بستگی داری به محل شما بستگی داری به نوع خدمتی که انجام دهیم اینها وقت دیدن یوسف علیه صلی یک انسان غیر معمولی هست مانند سار زمدانی ها نیست حرکات، آمال، گفتار، کلام مانند های معمولی نیست به خاطرین گفتن که "این نراک من المحسنین ما ترا جز نیکان و صالحین میدانیم حالا اینها اومدن، اینها تازه وقتی اومدن اومدن، توبتن حالا ما خوابی دیدیم تا تابیر کن؟ حالا از کجا اینها فهمیدند یوسف علیه صلی اللہ خواب تعبیر می کند. از کجا اینو فهمیدن؟ اینجا یک معنیش ما این است که حضرت یوسف علیه السلام احتمالا از اللہ و سلام در مورد زندگیش پرسیده بودن. و وقتی اخلاق و آداب اشار رو دیدن، از علم و دانشجو هم سوالی کرده بودن فرمودند که من خواب تعبیر میکنم در تعبیر خواب من یه طولای دارم و اول که زندگیش تعریف کرده بود اونها دیگه شدن بعد اینها گفت قال احد و اینی ارانی عصر و خمرا من میبینم که دارن شراب را به اصلاح اسیر بگیرم شراب درست میکنم حالا اینجا که گفت که من شراب میگن طبق بعضی از روایاته خود اونا ها انگور را به خمر تعبیر می کرده. انگور را شراب می گفتن بجای این که بگه من از انگور آب انگور می گفت من شراب می گیرم چون که در بازی از لغات عرب خود انگور را به خمر تعبیر می کنم اینجا هست که حضرت امام آزم امام ابو حنیف رحمت الله علی بگه اون شرابی که خیلی شدید هست که قطرش هم موجب حد هست که حضرت بشه یا نجیس هست کسی حالا بدون کافر میشه همون شرابی هست که از انگور گرفته میشه شرابی که از جو گرفته میشه تا زمانی که نشکنند نواشه حکمش بی این صورت نیست اللہ دلالش که محلش نیست اینجا همین همی چیز داخل از این قرآن همین چیز استنباق میشه این نعاشر و خمرہ من دارم که شراب درست میکنم در بعضی روایتی میاد که میگن که من خواب دیدم، اما پیش از عزیز صلی اللہ علیه سلات سلات، خواب دیدم که این چطا از این انگورها من گرفتم و از تا انگور و اینها رو دیگش آب اینها رو گرفتم و به پادشاه میدادم. نفر بعدی با این نیارانی احمل و فوقراسی خوبزا. نفر بعدی با من خواب دیدم که روسرم دارم که نانه ها رو حمل کنم. تا و تیرو منو پرندگان از دونها میخورند نبه نہ به تعویله اننا نراکه للمحسنین حالا تابیر خام ما چیه یک تعبیری بکن که می شما میداش ما انسان محسنی هستیم خیر اندیشی ترن جوری گفتن به خاطر اینکه وقتی سوالی پرسیدن فرضن شما چون خیرخواه هستی امیدواریم که جواب ما رو شما عنایت بکنی چون در وجود شما خیرخواهی هست در وجود شما بزرگی هست پس شایان یعنی بزرگان همینه که حالا تعبیر میکنم. حالا بعضی میگویند که اینها خوابی ندیدن حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنو میفرماند که خواب اینها ندیدن. بلکه اینها وقتی حضرت یوسف علیه صلی اللہ فرموده بودن که من خواب تعبیر میکنم دبتا حالا امتحان ازش میگیریم خلا خواب تعبیر میکنه، تعبیر نمیتونه. به اما حضرت عبداللہ ابن عباس رضی الله تعالی عنوان میفرمایند که خواب دیده بودن و خواب بعد را تعبیر خواب اینجا اومدن. وقتی اینها پیش حضرت یوسف علیه صلات و صلی آمدن بعد از اون حضرت یوسف فرمودند که لا یعطی کما و ترزقانه الا نبعت و تعبیل قبلن یعطی کما. علیکم مما معلمانی ربی. قبل از اینکه قضا برسه لجاتی و و ترزقانی نمیرسه پشیمان قضا یک پشیمان داده نیست من شما رو کاویر خواب خبر می قبل ان یاتی شما قبل از این که اون چیز شما برسه علیکم مما معلمانی ربي این بخاطر این است که پروردگار من به من اینو تعلیم داده حالا حضرت یوسف علیه الصلاۃ و السلام فرمودن که من از علم جفر استفاده نمی کنم از علم رم استفاده نمی کنم من از کهانت استفاده نمی کنم گفت پس چطور تعبیر می کنی تو همان ذالکوم مما علمنی ربی این بخاطر تعلیم پروردگار است این علم را خداوند متعال به من داده من جن نیست کهانت هم نمی کنم که جن برای من خبری بیاره یا از علم جفر و رم هم استفاده نمی کنم من تخمین بزنم رو محاسبات تخمینی نه این چیز هم نمیکنم. اون چیزی که می‌خوام به شما بگم اون چیز رو الله رب العالمین به من تعلیم داده اما قبل از اینکه تعبیر خوابو بگه فرمودند که لا یعتی ما طعامن تھوڑ زقانی قزا کے اس بار ویدہ قزا اس تعبیرشو میگم این چند معنا داشت حضرت یوسف علیہ السلام فهمید یکی از اینها دیگه می کشته میشه و اگر هم قرآن تعبیر میکرد، اینجا یعنی اون کسی که کشته می‌شد از پرت ناراحتی گوش نمیکرد، اون کسی که آزار می‌شد از خوشحالی توجه نمی‌کرد تعبیر رو حالا نگفتند یوسف علیه الصلاۃ و سلام بعد 5 سال 5 سال بعد تازه فرصت وی برای دعوت دادن تازه در دعوت به طرف الله رب العالمین پس اینجا این مسئله استنبات میشه که یک دایی و یک دعوتگر باید مدیریت در دعوت داشته باشه. چه وقت من صحبت کنم؟ کجا صحبت میکنم؟ باید فرصت بدونه محل کلام چی وقته؟ اگر کلام را در وقتش گفتیم تأثیر میکنه. اگر در غیر محل کسی آمادگی نداره ذهنیتش آماده نیست اصلا توجه نمیکنه اگر صحبت کردی کلامشون بی تأثیر هست. تا قبل از که زیاد به حضرت آمادگی کلام دعوت نبود که دعوت گوش کنند و ایمان بیاورد پس تو تا اون زمان آمادگی نبود حضرت یوسف علیه السلام و صلاح با اونها نیکی میکرد احسان میکرد اما دعوت نمیداد بعد پنج سال فرصت اومد که حالا بعد اون کلام الهی رو بینها حالا ابلاغ بکن مسئله بعد این است که یوسف علیه السلام داخل زندان، برای افراد کافر هم خدمت میکن پس خدمت کردن حسن خلق مخصوص ممن نیست با کافر هم باید خوش اخلاقی رو انسان باید داشته باشه داخل سوره بقره الله رب العالی فرمان که و للناس للناسی با مردم نگو نفرمودن که با این مسلمان ها قول للناسی برای مردم برای مردم هم با خوبی با مردم با خوبی صحبت میکنید. انجا ده دیو صلی الله علیه و خدمت برای کفار زندان و این است نبی مکرر اسلام صلی الله علیه و وسلم یک یه همسایه یهودی داشت ملاقاتی یهودی می پس خدمت کردن اینجا کار ربطی به مسلمان بودن و غیر مسلمان بودن نداره این درسی هست که الله رب العالمین به انسانیت میدهد، به ذات انسان میدهد. در خدمت کردن رعایت حقوق همدیگر، اینجا دین و آین و مذهب اینا باید برن کنار دین تو چیزی دیگر هست اما انسانیت چیزی دیگر هست این که بعضی از دولت مردان یا بعضی از حکام یا بعضی از آدم ها که هم فکر نیستن هم مذهب نیستن مثل حیوان برخورد میکنن آدم حساب نمیکنن اینها از تعالیم قرآنی دورن اللہ رب العالمین داره این تعلیم حضرت اوصو علیہ الصلات و وسلم را بیان میتونه قرآن کتاب داستان نیست کتاب قصسی نیست کتاب حکمت هست و راهنمایی و ارشاد هست پس حضرت اوصو علیہ الصلات و وسلم بعد از اون حالا فرمودن کہ که یعتی کما و ترزقان نہیں این چندین معانی این جمله داره اول این است حضرت اوصو علیہ الصلات و وسلم، چون فرمودن که ذلکوما مما علمنی ربی اونها گفته وقتی تعبیر می کنی چگون تعبیر میکنی پروردگار من تعلیم داده شاید در باور اونها سنگین بود تجوری پروردگار تعلیم داده چون در خود مصر چیزهای خرافات و غفره خیلی زیاد بود باید به با اثبات میرسون که اون علم خودش که من دارم از غیب حمایت میشم علوم غیبی من هستم فرمود اون قبل از اینکه اون غذایی که پیش شما بیاد و من شما رو خبر میدم چه نوع غذایی هست غذایی که میرسه چه نوع غذایی امروز برای شما میفرستن و چقدر هست طعمش چگونه هست اینها رو خبر میدم به شما من تا بدونید که من دارم درست میگم تو وقتی غذا برسه و غذا رو وقتی بینند که چیزی یوسف فرمودیان درست باشه قطعا کلام بایدیه شد. درستتر میشه با خاطری فرمودن صبر کنی حالا شما من خبر میدم. پس اینجا یعنی آماده همون قضاایی که اونها برای خوراک اونها میفرستادن یک معنی. معنی بعدیم بود که پادشاه هر گامی میخواد کسی رو بکشه برای کوچتر همون شاخ یک قضاای مخصوص میفرستاد. یک قضاای مخصوص. یعنی علامتی بود این دل کوچتر میشه. بعدیم فستری این رو گفتیم که داخل زندان اگر شخصی حکمش می شد یه قضاای مخصوص پیشو فرستادی میشن علامته این حالا این کشته میشه یا بعضی میگن که قضای میآمد که در اون قضا سپم بود وصل قضا اونها رو میپوشتن حضرت دوست فرمودن حالا قبل از این اون قضا برسه من خبر میدم که حالا چون قضای میرسه با کدوم قضا سپم هست سپم نیست این به شما من میگم یعنی قبل از این اون قضا شما برسه این حالت پیش بیا پس ما شما رو میگم یک معنی معنی بایدی. شما اجره نکنید. قبل از این غذای خوراک شما برسه تا اون موقع من شما از تابیرش مطلع می اما تا قبل از اون غذا حالا صحبت منو گوش کنید. اون دعوتی میخواد دعوت می دهد. اون صحبت منو گوش کنید. اینجا هم حضرت یصف علیه السلام دیگه خیلی چون که فهمید که اینی که از اینها کشته میشه شه را قبل از اینکه حکم اجرا بشه مسلمان بشه و با ایمان از دنیا بره تو نبی بود به خاطر همین مفعول شده بوده حضرت یوسف علیه الصلا و صرا این خاصه اون مسلمان بکنه و با ایمان حداقل میمیره اما با ایمان از دنیا بره نبی مکرم سلام صلی الله علیه و وسلم یه ای خادمی داشت به نام عبد القدوس از یهودی ها بود از یهود این خادم بیمار شد بچه ای بود، بیمار شد، نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیه وسلم برای ملاقات تشریف بردن، چون خادم بود؟ در سکرات مرد بود، نبی مکرم اسلام فرمو که یا, بل... یا قاسم، یا, بل... یا عبدالقدس، عبدالقدس اسمش بود که کلمه رو بخان، ایمان بیار، پدرشن بر بالی نشسته، این پسر نگاه می پدر و نگاه می نبی را صلی اللہ علیه وسلم پدرش هم یهودی، خودش هم یهودی، دعوت رسیده هنگام مرگ است. بعد پدرش گفت که آقای ابو القاسم، از ابو القاسم اطاعت بکن. یهودیها به نبی مکرر اسلام ابو القاسم می‌بافتن. از ابو القاسم اطاعت بکن. وقتی مودن عشاد الله الله ایدالله و عشاد ن محمد عبدو و رسولو وقتی نخون مسلمان شد جان داد نبی مکرم استران خیلی خوشحال شد. که یک مؤمن از جهنم خلاص شد رفت بهش یک انسان را بهشت اینجا چون این در سرشت انبیاء بود باید دعوت می دادم به طرف دین الهی حضرت یوسف علیه السلام و صلح همی کار کرد چون که می دونست داره کشته میشه سی روز بعد به خاطی فرمودن که پس بذار که اینو من بگم و بعضی می که حضرت یوسف علیه السلام و صلح چون که می دونست داره کشته میشه و کل رخ کلام تغییر داد صحبت را کلا جهت کلام را جای دیگر سوق داد تاکید بینها تغییر نگه. چون اگر تغییر شد که تو دارید میمیری فا قبل اجرای خوب که این جام میده سکته می کرد بخاطرین تراهم حضرت یوسو علیه سلاط و السلام خود جهت کلام را تغییر داد. این هم ابن ساق رحمه الله نظرش هم همین هست بعد که فرمودند که اینی طرخت ملت قومن لا یومینو بالله و هم بالآخرت هم کافرون من رها کردم قومی را که به خدا ایمان ندارند و به آخرت اینها منکرند یعنی حضرت و فرمودند که نگاه کنید من اومدم پیش شما اما این دینی در مصر هست این مصریان دینی قبول دارن از همه اینها اینی ترخت ملت قومن من رها کردم دین اون اقوامی را که اینها به خدا ایمان ندارن آخرت قبول نمی کنن من اینها رو قبول نمیکنم. کنم بیایید این طرف اینها خرافاتن اینها درست نیستن چکار میکنن واتباعت ملت آبائی ابراهیم اسحاق یعقوب. من اتباع میکنم از ملت دین آبائی خدم. ابراهیم علیه السلام اسحاق علیه الصلاۃ و السلام، یعقوب علیه الصلاۃ و السلام، حالا حضرت یوسف علیه صلات و رخ کلام را چرا از از ابراهیم شروع کردن، ابراهیم، اسحاق، یعقوب به خاطری فرمودند که من در یک خانواده نبوتم، یعنی در وجود ما شرک نیست، در وجود ما خرافات نیست، در نفس ما توحید غالبه من از نسل ابراهیمیم و ابراهیم و دین ابراهیم و توحید ابراهیم سر تاثر مصر مشهور بود ابراهیم همی میشوناختن پیغمبر رست شده خود را به اونجا منتسب کرد تا ها نشان میده حاله مسئله بعدین است که حضرت یوسف علیه السلام در هنگام بیان این که من از آبای من ابراهیم بودین اصحاب بودین و یعقوب اینجا گویا که داری نسب خود را بیان میکنه نصب را بیان کرد بگه به نصب جایز هست جوابش این است که برای این که کسی که تصیر باشه باید موقعیت اون طرف شناخته شده باشه حالا کسی بخاط یه چیز رو ارائه بده یه کلامی رو بگید باید قبل از ارائه کلام باید اون موقعیت اون تثبیت بشه حالا پزشکی دی اگر بخواد یه مسئله پزشکی رو به اطلاع مردم برسونه فلان کار انجام ندهید و با افتاده اول باید ثابتشی پزشکی در این چیزو بگی، بازاری نیست یا هر کسی دیگر اول بعد موقعیت ثابت بشین بعد کلامش خریدار پیدا میکنه اگر موقعیت ثابت نشده کلامش خریدار پیدا نمیکنه به خاطری حضرت یوسف علیه السلام تا السلام تائیک اونها بدونن که من از یه خانواده بزرگم من نبی الله رب العالمینم به خاطری فرمودن که که من اتبا کلام ملت پدری خود را آبای ابراهیم اسحاق یا و مثل بعدی اینجا حضرت یوسف علیه السلام فرمودند که و اتباط ملت آبایی ابراهیم اسحاق یعقوب اسحاق و یعق ابراهیم را بنوان پدر ذکر کردن پس نسل پدری انسان پدر بزرگها جز آبا و اجداد حساب میشن این از در میراسم وقتی پدر نواشه جد پدر بزرگ جای پدر هست و رو بالا میکشه اگه برادران باشند و پدر بزرگ باشه حالا برادر هم محروم میشن پدر بزرگ کل میراثو میبری بالا یا در این نکاح هم پدر بزرگ ولی قهری هست به صورتی که پدر ولی قهری هست میتونه دختر دختر نابالغ را بدون از اجازه نکاح کنه پدر بزرگ هم میتواند همین کار رو انجام میده اینجا حضرت یوسف علیہ, حضرت علیہ و السلام هم همین چیزو فرمودن فرمودند و اتباق نلت آبای ابراهیم و اسحاق و یعقوب من اتبا, اتبا میکنم از نلت آبای خودم این بزرگانی که همیشه من میشناسید. و, و یعقوب رو آخر ذکر کردند اول ابراهیم رو ذکر کرد حکمتش همین بود که اول افراد مشهور و از ذکر بشند که اونها که قابل شناسایی هن فکران کامل واضح و زود در قلب اونها بیافتید المستقي از یعقوب ذکر میکرد تا رسیدن به ابراهیم برای اونها کمی سخت بوده هضم کردنش انخاره فر بوده کس یک مشهورتر هست به همین صورت نبی مکرم اسلام داخل صحیح بخاری حدیثی ظاهره که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم در جنگ حنین فرمودند که در جنگ حنین انا نبی لاکذب انا ابن عبد داخل صحیح بخاری می آید وقتی داخل حنین صحاب کرام کمی تکانی خوردند یه بالا پایینی شد اگر میشینی مختصر سورت از قاتل پایین اومدن و با اون نگاه پیغمبران ندا دادن که انا نبی و انا ابن عبدالمطلب من پیغمبر دروغینی نیستم من نوه عبدالمطلب من پسر عبدالمطلبم اینجا هم نبی مکرم صلی الله علیه وسلم نفرموده که من پسر عبدالله هستم پسر عبدالله بود اما فرموده من پسر عبدالمطلب هستم. پدر بزرگ را پدر ذکر کردند چون که شهرت عبدالمطلب در بین قریش و خود آراب خیلی زیاد بود. کمالات عبدالمطلب و سرداری عبدالمطلب را همه میشناختم. و عبدالله پدر گرامی نبی مکرمی سلام صلی عليه علیه وسلم به اون جایگاه چون در جوانی وفات کردم. سرداریش به نمایش مردم نام اومد. به خاطر اینجا عبد را صدا زد اینجا هم حضرت یوسف علیه السلام و اون پدر بزرگ مشهور خود را حضرت ابراهیم بود که امام و الانبیا بوده به خاطر این ذکر کردن اول فرمودند که ذالی که فضل الله علیه نوال الناس این فضل خداوندی هست بر ما و بر مردم که این چیز رو من دارم که پیغمبر بودم پدرم پیغمبر بوده ولكن اکثر الناس لایشکرون اما اکثر مردم شکر نمیکنم کنم الا یووحیدون توحید را رعایت نمی کنم حضرت یوسف علیه سلات واسه زیبا داره میگه. اول در تعریف می کن. اول معرفی کردن خودش پس این از که معرفی کردن انسان در خیلی جاهز دو ضروراته با خود و خود تو معرفی که تو هستی از کجا امدی بعد بیان کردن علم و موقعیت این هم جائزه این حضرت یوسف علیه صلات و سلام انجا اعلام کردان و بعد از اون یوسف علیه صلات و دعوت داد که اون دینی که الله رب و عالمی من دادیم اون دین رو من قبول دارم این جز نعمت الله رب و یعنی توحید یک نعمت هست بخاطی فرمودم ولیکن اکثر الناس لایشکرون اما اکثر مردم شکر گزار نیستن یعنی توحید رو نمی کنن الله رب و عالمی بیفرماین که الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ثُمَّ نِعْمَت رَقَامِل کَئِنْ دین را کامل کردن پس دی خود دین یک نعمت هست وقتی که نعمت باشه شکر نعمت ضروری هست علیه و از اینکه رسول الله صلوات اینجا شکر نعمت برمون ولی کن اثر الناس لا یشکرون این آمدن انبیاء پدرم نبی بوده پدر بزرگها بودن بگی فضل الله یعنی ما از خود ما کاری نکردیم کثر نکردیم الله رب العالمین عنایت کرده این عنایت پروردگار اگر عنایت نمی‌کردند کار صورت نمی گرفت بعد از زور هم حضرت عیسی علیه الصلاۃ و السلام در وقت فرودن که بر ما و بر مردم این توحید بپذیرند بر همه مردم این احسان الله رب العالمین است که انبیاء را می‌فرستند تا که توحید را قبول کنند واسی که توحید آمرا هست انسان باید شکر بگیری گیری من مثلا وقتی ما مثلا سلمان باید شکر گزار باشه خدا را شکر الله رب العالمین ما رو به ادیان غیر اسلام نبرد مسیحی نکرد یهودی نکرد مجوسی نکرد ادیان باطل و پرست نکرد بلکه ما رو در دی در دین اسلام و بر آیین اسلامی الله رب العالمین خلق کرد در خانواده اسلامی ما رو پیدا کرد اینجا شکر هست که بعد انسانها شکر گذار بعد بعد فربود یا صاحب یا سجنه. ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار ای دوستان زندانی من ای دوستان زندانی من آیا ارباب متفرقون ای خدایان متفرق پراتنده بهترن ام الله الواحد القهار یا اون پروردگاری که غالب بر هر چیز هست اینجا حضرت روسو علیه السلام و سلام روخ کلام چقدر نرمه هست داره دعوت میده و خیلی نرم دوت میده یا صاحبی از چجنه اینها مسلمان نبودن مسلمان نبودن چون مسلمان نبودن به خاطری کلام را اینجوری فرمودن ای رفیقان زندان ای دوستان زندانی من من و باشم با هم در یک زندانیم در یک جا گرفتارین پس علا سوالی هست که یعنی گوید حضرت موسو علیه السلام به همه زندانیا خطاب کرد که شما شما آیا خدایان یعنی مختلف بهترند یا یک رب بهتره؟ کدوم رب؟ اللّه، خداوندی که قاهر هست. امیل الله الواحد القاهر، غالب هست. یعنی چه؟ به چیزهایی که شما داری عبادت میکنید، اما رب من بر همه اینها غالبه. اون قدرت مطلق رادارل، مالک مطلق هست، فعال موجود هست. اون از هم بهتره که اینکه اگر هزار تا باشند چطور ازش میکنید؟ الله داخل قرآن فرمایند که اگر در این کائنات دو تا خدا باشند، دو تا خدا باشند، فساد میاد. این میگه انجوری بکن، میگه نه من اگر دو تا خدا باشند، یکی امر میکنه، یکی نه میکنه، دو تا قدرت به هم دیگه بیاورند، فساد در آن میآید. اما اگر یک اله باشه در اونجا دیگه، اونجا فرمان رواه مطلق هست. خیر پیچیم کمپذیر رو نیست. اینجا داره میگه که پس از یک رب اطاعت میکنی که قاهار هست، غالب هست، سوانمن هست. باید تر بودن که آن چیزی که شما عبادت میکنید. این هی ایلا اسمان سم میتنوها انتوما آباؤکم این ان حق شما داری عبادت میکنید و ما تابدونه عبادت میکنی این هی ایلا اسمان سم شما نام گذاشتید تو گفتی خدا هست تو تو میگی ما بودی خدا میگی رزاقه در حالی که نیست اینجا یوسف علیه السلام با بالا اقلی دین اسلام کلام الهی کتاب منطق هست باطلال اقلی و منطقی فرمودن که حالت تو میگی این رزاقه این مالک هست این کشندی هست اون فلان کارو میکنه، این خدایان شما داری عبادت میکنید، شما نامگذاری کردید اینا هیچ کاری نمیتونم بکنم، وقتی کاری نمیتونن بکنان پس اینها دیگه اینها را عبادت نکنید. بر به ذات باری تعالی دعوت را داد. همه زندانی ها رو تشفیع و ترغیب کرد. در بعض دروایت بیشت این دو نفر هم مسلمان نشدن. اوز میگن که مسلمان شده اما ظاهی این است که مسلمان نشدن. بعد از اون وقتی که حضرت یوسو علیه السلام دعوت را تمام کرد اونها به طرف یک کافرستی دعوت داد. نصیحته کامل و کم این درس بعدی این است که باید انسان خیرخواه و به باشه مسئولیت انبیا کاری که اونها رو بودن همین کار بود خیرخواه بودن امت پس هر جا فرصت باشه در هر زمانی که فرصت شد باید دعوت انسانها بدم به طرف توحید واری تعالی دعوت بدهم نه از منکر باید بکنن بعد دعوت دادر تمام بعد که یا صاحبه یه ای دوستان زندانیم اما احد و احد و کما. رب و خمرا اما یکی از شما دوباره برمیگرده به پست قبلیش و مسئول آبرسانی و نوشیدنیهای پادشاه میشه و اما آخر فیوس فتاقل و فتاقل تیرو من رأسه اما نفر بعدی به دار آبیخته میشه و برندگان از مغزش میخورن بعضی فرمودن که قرنگید گروشه هاش رو می و می خورند آبیزان می اینجا حضرت یسوف علیه سلاط و سلطن که تو میری بیرو و تو میریز اللہ کشته میشه. شود این رو بخاطر این نفرمودند چون که اگر می تو کشته می شود بازه بود این تراهم نبوت بود خیلی آرام مطلب را بیان کرد اما بازه تراهم کرد و مشخص نکرد کی از چواه؟ میشه. اما اونها دیگه خودشون هم میفهمیدن چون کسی گفته بان شراب درست میکنم معلوم و تعبیر مال همون میشه و کسی گفته بود که من بالا سرم دارم تعبیر مال همون میشه اینکه که دیده بود که الان من روز سرم نان دارم در وقتی روایت میگه گفت که من خواب دیدن داخل سه تنور دارم نان میپزم نانه ها داخل یک تابه گذاشتم. دارم میبرم و فرمودن که بعد سی روز تو اعدام میشی. و تو هم بعد روز آزاد میشه. وقتی تعبیر فرمودن حالا گفتن که ما خواب ندیدیم، هم ما همین دور خاصیم، امتحان بکنیم. تعبیر روايت هدیه عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی نه که بعد گفتن که ما خواب ندیدیم و خاص امتحان بکنیم. آیا شما میتونی تعبیر کنی یا تعبیر نکنی؟ فایده قصدي الأمراللي فيش تصرفيان. اون سوالی که پرسیدی حالا تمام شد. حالا همین میشه. خواب دید یا ندیدی حالا حکمش همین است یعنی گویا وحی آمد که دیگه اعدام میشن و نفربادی هم آزاد میشه یا این است که بعض حدیث داریم که خواب بر پر پای پرندی آویزان تعبیر کردی میره میوفتی حدیث دیگر داری کسانی که در حدیث داریم که من افرالفر فری انتر الرجل عیلی مالم تریا انگر الرجل عیلی مالم تریا بدترین دروغ بدترین دروغ همان است که شخصی به خود چیزی را نشان بده که ندیده یعنی خواب دروغی را تعریف کنه اگر کسی خواب دروغ تعریف کرد بدترین گناه ها هست حدیث صحیح و حدیث دیگری داری نبی مکرر اسلام فرمودند که کسانی که خواب دروغ را دارن بیان می کنند دیگه من خواب دیده در حالی خواب ندیده باشه روز قیامبه به یک عذاب دردنا باب تیر بازی روایات یک دو تا جو دادی میشه بیا این بین ها گره میزن دو تا جو دادی یعنی گره میزن علاگ جو گره زدن یا در این اعضا گره خار گره فا میشه که صحیح کار تو کرد از خوابی که انسان میبینه حال نباید دروغ تعریف کنه علا این حقیقت خواب از کجا هست چگونگی خواب رو دین حقیقت خواب انسان چگونگی خواب میبینه این داره حقیقتی هست نفس انسان نفس ناطقه انسان الله رب در درسن نفس ناطقه درست که صحبت نیکنه این قابل فریدان هست پرواز کردن هست. نفس و رو پرواز میکمیر بالا به پایی اما در جسم قرار میگیره مشغول جسم هست وقت در جسد کال بود ماهر مشغول جسم باشه هرال نمیتونه بره بالا نمیتونه بره به لو لو محفوظ نگه بالا بره بگردی گردی این طرف اون طرف وقتی که میخوابه و بدن تاکیل میشه در این صورت روح و نفس از انسان از جسمش فاصله میگیره فاصله میگیره و میگرده می وقتی میگرده با روحای زنده ها ملاقات میکنه و با ارواح مرده ها ملاقات میکنه در صورت زمر به این نقطه الله رب العالمین اشاره کردن فیمس کلتی قزع علیه الموت اون روحی که بر او الله رب العالمین موت را آورده هم که ایباد بمیره اون رود نگاه داشت میشه شب که میشه روحا میگردن اگر اون روحی که حالا فاصله گرفته، اگر موتش آمده باشه منجا نگاه میداره بر نمیگرده اون که موتش نومد بر میگرد داخل جسد و سود واره از خواب میدار میشه پس این روح وقتی فاصله میکشب که میشه وقتا تعطیل خوابی پس روح فارغ میره تعلق هست نفس میکشه باوجود تعلق باز میره حالا چیزهای غیبی رو میبینه، مشاهده میکنه، از آینده رو میبینه و خود او مسئلهای فرشته را شد بیش حتی بعضی میگن که لای محفوظ هم بعضی میبینه. این از خواب میبینه و خاصاً او خواب داریم خواب رحمانی، خواب شیطانی و وسواس. بعضی خوابها خدایی هن، الله العالم دو آگاه میکنه تعبیر دارم. بعضی خوابها شیطانی، شیطان الغام میکنه، شیطان داخل دماغ انسان میخواد و الغام میکنه. و خواب بعدی خواب نفس روزانه گرفتار مشکلات است و با همین فکر و خیالات میخوابه خواب بینه. پس این کدوم خواب درسته و کدوم خواب غلطه خود موضوع خواب فرم میکنه. اگر موضوع خواب خوب باشه اونجا دیگه تعبیر میشه. پس این دو نفر خواب اونا خواب تعبیرداری بود. وقت خواب تعبیرداری رو تعبیر کردم. پس اینجا اینها و من پیشکی پیش حضرت یوسف پس این است که اگر خواب دید برای تعبیر خواب بعد پیش انسان مخلصی بره و از دو بپرسه و انسان مؤمن و متقی باشه بعد از این که خوابو اینجا بیان کردن و تعبیرها فرمودن بعد فرمودن که اون چیز شما خاصی حالا اینجوری میشه و قال للذي ظن انو نازج منهما اذكرني عند ربك موسو عليه السلام بعد به با اون کسی که میدونی از آزاد میشه به تنهایی گفت که خلانی اونجا که رفتی پیش خدای خودی یعنی پادشا یادی از من هم بکن فانساه الشیطان ذکر ربه فالدسه فستجن بز اسنین تو شیطان فراموشش کرده و سالها ساد موسو علیه السلام در زندان مان حالا وقتی که حضرت موسو علیه السلام به تنهایی به اون که حالا سه روز بعد تو آزاد میشی اونجا کلسیدی یادی از من بکن اینجا چند تا, تا تفسیر داره تفسیر اولی این از که وقتی که رفتی بگو داخل زندان یه شخصی بدون, بدون گناه زندان شدی مظلوم داخل زندان ها اونو بیرون کن حالا سوالی متر همیشه اونجا یوسف فرموده رب سجن و حب بلیه ای خدا زندان بهتره حالا چرا میگی برم بیرون؟ سوال اینه اونجا گفته بود که زندان بهتره میرم زندان حالا داخل زندان کی راسید حالا میگه حالا بگو من بیرون, بیرون کنم جوابشینه است که زندان خوب شگاف میاد خوبه 5 سال رات شد بعد یه که حضرت یوسف علیه است لاتوا استرس زندانو و خاطر از ازو مصیبت طلب کرده بودن نه به خاطر خوشی حالا چون ازو مصیبت خلاص شده بود و خاص کبران بیرون حالا فرمودن حالا من باید وقتی بیرون آمدن من هست به فرمودن دوباره یادی از من بکن اما بعضی از علما میگویند یعنی که حضرت رسول علیه السلام به همین آقاگو وقتی رد پیش پادشاه به بی پادشاه بگو که داخل زندان یک شخصی بوده مؤمن بوده و مرد به طرف اسلام دعوت داده یعنی گوی حضرت رسول خاص پادشاه رو هم به به طرف دین الهی دعوت می‌دهد. بر اونجا بگو که چنین شخصی بوده و چنین حرفهایی رو زده، توحید را بگیری، یک تفسیر را بگیری و اینها ها رو رها بکنید. بعضی اینجوری تفسیر کرده‌اند. اما، اما بعضی میگوین که نه، اونجا گفت که اونجا بگو منو بیرون بکن. وقتی اونجا را فراموش کرد و سالها سال انجامان. نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله فرماند اگر یوسف همین چیز را نمیگف از زندان می بیرون اما اصرار کرد که بگو برح الله بگو که منم بیرون میکنم یعنی اینجا الله را گواش تو به بنده متوسل شد الله را گواش و از بندگیت کمکت خاص وقت از بندی کو با خاص الله رب العلی با اعظم تنبیه کردو 7 سال دیگه در زندان ماند یعنی یوسف علیه السلام دوازده سال در زندان معامل پنج سال قبل از تعبیر خواب، هفت سال بعد از اینکه که گفته بود که برو پیش پادشاه از من هم یادی بکن تا رو بیرون بکنه امام راضی رحمه الله میفرمایند که اون چیزی که با تجربه ثابت شده هر آدمها آدم ها من چیزی من تجربه کردم و تا این سن و سار رسیزی هم سن و پنج هفت سالگی داشت اون چیزو می به چیزی من تجربه کردم در کل زندگی. تا امروزا تا این سن وسیده ام که هرگاه که و پیش غیرالله الله الله رب العالی باز گرفتار می‌کرد از مشکل حل بیرون نمیآمدیم و ها اما هرگاه ما مستقیم از الله رب العالمین تلا میکردم الله رب در درهای غیبی‌اش را به صورت انگیزی باز می‌کرد و مشکل ما را حل می‌کرد اینجا یوسف نبی کریم فرموده اگر یوسف علیه الصلاۃ و السلام اینجا من علی یاد بکون بیرو بیرم اما چون کی گو الله رب العالمین فرمودند کی چرا این کارو کیدی چرا چون قبل از همین کتاب بیرو کنه چه فرموده ارباب المتفرغون خیرون امیر الله الواحد القهار اون خدای بهتره فقط ای الله بهتره داره اونها به طرف توحید دعوت میده از الله بخواید خودش کو حالت یاد از من هم برای من سفارشی بکن اینجا دیگه الله رب العالمین راضی نشود حضرت موسی علیه السلام، یک هر فیض الله راضی نشود، تنبیه که گروپ، برو پیش خیزره. حالا سالها سال, سال مدت طولانی، دنبال خیز راست پیدا کردو، تنبیه شد. هم موسی علیه السلام فرمود که من، اللہ یاد بکن، اللہ فرمود که نه، تو نبی من هستی، باید پیش من می میکردی. گرچه کمک گرفت از مردم قرآن میشیر کنیز، اما فرق میکنه ترکیباست. طرف یوسف هست. وقتی یوسف طرف نبی هست. حسنات الابرار، سیئات المقربین. در بعضی روادی او یکی وقتی که فرمودن الله فرمود که یوسف کی تو را از م... چه بیرون کرد؟ فرمودن شما. کی تو را از دست بیس الله برابر که کرد؟ فرمودن شما. فرمودن کی تو را از دست زره خابی کرد؟ فرمودن شما. با فرمود چرا حالا گفتی که من اونجا یاد منو بکن؟ سرازنده خاصی پس حالا باید تذکر میشید 7 سال دیگر در زندان حضرت یوسف علیه الصلاۃ و السلام به یکی فراموشی کوچیک اینجا فراموش کرد فهمود باری لا ای خدایا این مصیبت های بزوری. من منو فراموش کرد این همه تکالیف پوری من آمده من فراموش کرد عزیز من منو به بخشش و مغفرت بفرما به هر این حال اینها درسن در سوره یوسف کلا رب العالی در بیان میتونن شما در هر حال یک الله رو پرستش کنی بعد این است که وقتی که مؤمن هستی بر مؤمن بودن اونجا باید سهرگزار باشی و بعد از اون کمک کردن به کافر هم درست هست یوسف علیه الصلاۃ و السلام رو کمک کرد و بعد این است علم تعبیر خواب علم خیلی بزرگی هست اگر الله به کسی تعبیر خواب شوخ شوخگزار واه چرا تعبیر خواب مشکل بر طرف نمیکره، اما اسباب نجات را فراهم میکره. کسی خواب بینه همون چی اتفاق می افته، اما انسان میتونه اسباب نجات را فراهم بکنه چونی عمل میکنه. یو سؤال حضرت وصی خواب و تعبیر کردن و تعبیر کردن خواب فورا اسباب را فراهم کردن که اینجوری جوری اسباب نجات مصریان اینجوری جوری هست که با کشاورزی بکنم. پس خود تعبیر خواب که داخلون الله رب العالمین انسانها رو از چیزهای غیبی مطلع میکنن علمی هست که برای هر کسی الله را بر عالمی نمی دهد. ونگانی بعضی ونگان خودشها انایت می پس این هم علم علم خوب و محبوب پسندیده ای هست.